بسم الله الرحمن الرحیم بنا می بی نهایت بگو ای کافران آنچه را شما می پرستید من نمی پرستم و نه هم شما پرستنده ای چیزی هستید که من آن را می پرستم و نه هم هرگز من پرستنده ای چیزی هستم که شما آن را می پرستید و نه هم شما پرستنده چیزی هستید که من آن را می پرستم برای شماست، دینی شما، و برای من است دین من.